الرحيم، اللهم اشرح لسدي ويسل يامري وحلو لغة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حونوا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وعباد الرحمن. و های خداوند متعال جل جلاله الذین کسان هستند که یمشونه على الارض حونا مشیه رفتانه میکنن رفت آمد میکنن در زمین على الارض بالای زمین حونا با آهستگی با وقار و اذا خاطبهم الجاهلون و وقت که مخاطب قرار می دهد ایشان را یعنی روبرو با جاهلا قال و سلام و که سلام بر شما باد ای آیات شریف که امروز ما و شما می خانیم ای آیات شریف تقریبا سیزده صفت مسلمان های حقیقی را بیان می کنند یک مسلمانی که میخواه که خدا در صفح عباد و رحمان قرار بتن در صفح بنده های حقیقی خداوند مطال جل جلوه خدا قرار بتن باید این 13 صفت داشته باشه اولین صفت از اینا چیست میگه خداون مطال میگه و عباد و رحمان بنده های رحمان ما مثلا بنده های شیطان داریم که پیروی از شیطان میکنن بنده های نفس داریم که نفسشان سرشان غلبه کرده اینا را غلام خود ساختن. بنده های پول داریم که پول سرزنا غلبه حاصل کرده اینا را غلام خود ساختن و ما بنده های رحمان داریم که اینا کوشش میکنند که بنده های حقیقی ذات خداوند مطال جل جل رو باشن این مردم ها که این قسم صفت دارن الَّذین کسانی هستن که صفت اولشان چیست؟ یمشون علالعرض حونن یعنی در زمین با توازو حرکت میکنن توازو کند هوشمند گوزین نهت شاخ میوه سر بر زمین انسانی که بنده خداوند است قرآن درست میفهمه ی همیشه وقتی که در زمین سیر و حرکت میکنه با بسیار تواز و حرکت میکنه حضرت لخمان بر بچی خود میگه که بچم ولا تسعر خدکل الناس ولا تمشي في الارض مرحا اتناتو که چهری در تر به مردم نشان بدی یک بغله را بدی سونه انسان ها و بنده های خدا سائل نکنی و هم با بسیار غرور و تکبر در روی زمین را نرو کسانی که مثلا متوازی هستن اینا وقتی کس در مقابلشان میه سلام میدن و خودشان هم حرکتشان با بسیار توازو هست ولی کسانی که خرامان را میرن افتخار میکنن، درا خنده میکنن، مسقرگی میکنن اید شایرشی میگه میگه از کسرت خامیست که در جوش و خروش هست چون پخته شد و قابل دم گشت خموش است انسان هایی که پخته هستند و رسیدند متوازه می باشند درخت چنار که میوه است، حاصل ندارد. ای سرش بلند از بسیار دراز و سرخته به طرف آسمان میگیرند. اما درخت های میودان همیشه سرشان به طرف زمین پایین می باشند. حتی اگر کسی امرائی سنگ ای درخت های با را بزنه شما دیدین که درخت بامیوه را که که سنگ میزنن و پس سنگ سر از اینا غار نمی بلکه در مقابل سنگشان برشان میوه می تن. انسان هم مثل اینمی درخت های بامیوه را می باشه که اگر کس اینا را هم بکنه با وجود از اینا در روی زمین با آرامش و با توازو حرکت میکنه شاعر دیگه که زدیگ بختگان نویت صدایی. خروش از مردمان خام خیزد کسانی که خام هستند اونا بسیار در راه رفتن و در بالا شدن در سرویس و در موتر و در همه جای بسیار غیر متوازیانه متکبرانه حرکات منفی است به اشخاص سر می‌زنند ولی انسان هایی که پخته هستند زده پختگان نایت صدایی. دموتر موتر قرار شیشه وقت خدا با ارزش میسازد. چه قسم وقت خدا با ارزش میسازد؟ انسان مسلمان وقت خدا با ای با ارزش میسازد که وقت بیکارمان خاموشیش فکر از در باری دنیا در باری خدا در باری مخلوقات فکر میکنه و وقتی که صحبت میکنه صحبتش ذکر میباشد. یعنی زبان خدا که حرکت میتن سخنای میگه که او در جمله ذکر حساب میشه مسلمان اولی حقیقی از عباد و رحمان و اذا خاطب الجاهلون جاهلون سلام دوم صفات بنده های رحمان کی هست که وقت با انسان های جاهل روبرو برو میشن اینا بر از سلام میدن میگه شما را خداون سلامت نگاه کنه از این خاطر اگر از, اگر از هر دو جانب جاهلان اگر زنجیر باشد بکسلانند دو نفر که جاهل باشند مشکلشان رفت نمیشه. یک جاهل را دیدن که در یخن یک دانشمند دست انداخته عالمی از اونجا تیر شد و گفت که اگر این دانشمند میبود گپ خدا به این سرحت نمیرسند که او جاهل دست به یخن از پرده چرا که انسان که بندی خداوند است کوشش میکنه که حتی با جاهلا چیکنه گذشت بکنه نه تسلیمی که به اعمال از اونا تسلیم شود نه خیر و نه هم سلام تعییدی که اونا را تایید بکنه نه اونا را تایید میکنه و نه به اونا تسلیم میشه بلکه سلام میتن سلام که او را صرف گذشت از حرکات از اونا تیر میشه و شان میگه سلام علیکم وقتی که اونا هر بیده بیره میکنن تیر میشه و وقت خدا با مصروف ساختن با جاهلا وقتی با ارزش خدا زایی نمیسازن صفت سوم بنده های خداوند متعال که عباد و رحمان هستن چی هست؟ وَلَّذِينَ يَبِيْتُونَ لِرَبِّهِمْ و وَقِیَامَا لرب الَّذِينَ کَسَانِ هستن که یبیتون شبه صبح میکنن لربهم برای پروردگار خود یعنی انسان که میخواه بنده حقیقی خداوند باشه شبه بر خود نه بلکه شبه کوشش میکنه که بر خداوند تخصیص بده یبیتونه بات یبیتو یعنی شب گذشتان شب میگذارانه بر چی؟ لرب بهم بر پروردگار خود یعنی در کدام حالت آمی باشن؟ سجدن در حالت سجده و قیامن و در حالت استادن و قیام یعنی شب هست. چرا اینجا گفت که غالبا شب وقت غفلت است تمامی گناه ها و اشتباهات و خواب و غفلت همش در شب است لیکن بنده های حقیقی خداوند گوشش میکنه که ساعتی از شب خدا تو نمیشه که انسان مثلا تمام شب استراحت نکنه بلکه اعمال میکنه که خوابش هم در عبادت حساب شود. یا کسی از یک مسلمان پرسان کرد که شما چه وقت عبادت میکنین گفت ما 24 ساعت عبادت میکنیم گفت خایچ خواب نمیکنیم؟ گفت نه خیر ما خواب هم به طریق رسول الله صلی الله علیه و سلم میکنیم از این خاطر خواب ما هم در عبادت حساب میشن کس که نماز و خوابتن و صبح در جماعت بخونه مثل که تمامش شو عبادت کرده باشند که تحجد میخوانه نسبه شو برای پانزه دقیقه بیدار میشه و نماز تحجد میخوانه ای هم در عبادت حساب میشه که پیشیز کرده از این خاطر بنده های حقیقی خداوند ساعت بر چی دارن؟ ساعتی دارن بر تلاوت قرآن برای خواندن درس تعلیم و حفظ درس خود حتی اگر یک کسی با نیت نیک درس خدا میخوانه که در آینده مستر خدمت ب و کشور خود شوام درسای آدیه زی هم بر عبادت حساب میشن از این خاطر بنده های خداوند صبح می میکنن یا شب را میگذارنن لرب به همبر پروردگارشان سجدن و قیاما در حال که اینا سجده میکنن و قیام میکنن و تحلیل علم میکنن و عبادت خداوند متعارم میکنن و الذین یقونون ربن اصرف و عذاب جهنم والذين ای صفت دیگه مسلمان هایی از چی است که یا یقولون کسانی هستند که میگوین ربنا و پروردگارا عصر دور یا بازدار از باز از ما عذاب جهنم عذاب دوزخ نه عذاب حکر نه غراما این عذاب دوزخگه است عذاب بسیار لازم شونده هست خب در این قسمت این صفت چهارمی عباد و رحمان است صفت چهارمی بنده های خداوندی است که همیشه قلبشان در خوف و رجا می باشن. یعنی مسلمان حقیقی قلبش در خوف و رجا می باشن. خوف چی مانند که از عدالت الهی می ترسن. از عدالت الهی می یکی از دانشمندهایی که بنامه پیرهراتو را میگن خواج عبدالله انساری او میگه خدایا همه از تو ترسند و من از خود چرای گفت میگه می به خاطر ازی که ذات خداوند ذات عادل است خدایا همگی از تو میترسن لیکن من از تو نمیترسم من از خود میترسم به خاطره که خداوند ذات عادل است و اگر انسان گناهی نکنه خداوند او را جزا نمیترم از این خاطر انسان باید از خود بترسد. چرا که خودش گناه میکنن و عدالت و رحمت خداوند رحمت خداوند تقاضای عدالت میکنن وقت خداوند مهربان است باید عادل باشد که بر هر کس مطابق عمل کردی از او پاداش و جذابه ترمید از این خاطر میگه صفت چهارمی بنده های رحمان چیست که والذین یک قلول باوجود ازی ای که اینا اعمال نیکن کنند. باز هم میگه ربنا پروعدگارا اصرفان و عذاب جهنم عذاب دوزخ را از ما دور بساز بخاطر ازی که عذاب دوزخ لازم شونده هست یعنی عذاب بسیار بد و خطرناک است اینها ساعت مستقر و مقاما چرا که اینمی دوزخ که است ساعت مستقر جای بسیار بدی برای استقرار و برای بودن است و مقام و جای مقام بسیار بد است خدای ما را با وجود از که کوشش میکنیم که اعمال نیک بکنیم ولی هم انسان چون نفس داره و نفس ظالم است، تا وقتی که نفس خدا اسلام میکنه نفس انسان امارتون به سوه هست عمر میکنه انسان به بدیها ولی میتونه انسان که نفس امارتون به سوه خدا به واسطی اعمال نیک به نفس لوامه انتقال میتن یعنی نفس تارفی میکنه وقتی در ابتدای هست به تن بسو همیشه مردم و بدی ها دعوت میکنن ولی کسی که عبادت میکنه توسط عبادت انسان سازی میشه عبادت برای انسان سازی است وقتی که انسان ساخته شد از داخل خود نفس نفس لوامه میشه نفس لوامه چیست است که انسان های نیک بخت و خوشبخت وقتی که در یک مجلس و محفل بدی اشتراک میکنن از داخل نفس از اینا برشان میگه که خودت کردی ای باز نفس قبلا اما را به سو بود حال نفس چی شد؟ لوامه شد. حال انسان از داخل ملامت میکنه که چرا این کار بده کردی؟ و اگر انسان باز هم به با عبادت های خداوند مشغول شود و قرآن از این مشان دستور زندگی خود بسازد، مطابق قرآن عمل بکنه باز اینمی نفس امماره سو به سوک به نفس لوامه تبدیل شده بود ردبه عالی تن ره میگیره که باز نفس مطمئنه میشه یا ایتو هن نفس المطمئنه ارجعی الاربه که رادیت المردیه بازی اونمو نفس مطمئنه کدام نفس که بازی هیچ وقت از هیچ کسی نمیترسد اما حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم در زندگی عملی ازی تطبیق میشه که پیغمبر صلی الله علیه و سلم به حضرت عبدالله ابن عباس که بچهک جوان نو جوان بود برخ گفت که یابونه او بچه که این. من ان اعلمک کلمات من بر چند کلمه ای را تعلیم می دهم بیر یاد بگیر تا که خداوند متعال تو را در حفظ و پنای خود داشته باشه بیر با یاد داشته باش که اگر تمام دنیا بخواین برای تو خیری برسانن اینا برای تو خیر نوکی رسوندن نمیتونن مگر چیزی را که خداوند برات نوشته کرده و اگر تمام اهل زمین بخواین که بر تو شهر برساند اینا هیچ چیز کردن نمیتونن، مگر چیزی را که خداوند بر تو نشته کردن رفعت اقلام و جفت صحاب قلم ها برداشته شده و کتاب ها خوش شده از این خاطر این نقص مطمئن نباز آرام میباشه که و رزق کنف سما رزقتان در آسمان است چه قسم رزق مادر در آسمان است یعنی چیزی که خداوند متعال جل, جل, جل تو نمیشه صرف. وظیفه ما است، وظیفه مایی است که کوشش کنیم که اون رسق که ما قرار است او را از طریق حلال بدست بیاریم از رفت قلم چی میگه یکی از شاعرای ما که عمر خیام است عمر خیام میگه که از رفت قلم هیچ دیگر گون نشود و از خوردن غم جز جگر خون نشود گر در همه عمر خیش خون بخوری خوری یک ذره از آن چه هست افزون نشود وقتی که انسان به این اعتقاد بود که والقدر خیره و شره من الله تعالی اندازه خیر و شر از جانب خداوند متعال جل جلاله و انسان اختیار داره که نیکی ها را به خود جلب بکند و از بدی ها خود نجات دهد از خاطر بلاخره نفس انسان از نفس لوامه به کدام نفس انتقال کرد؟ به نفس مطمئنه که نفس مطمئنه نصیب جنت میشه چرا که؟ یایت یا و قرآن چی میگن؟ میگه در روز قیامت بر زمین نفس مطمئنه گفته میشه که یا نفس النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه تمردیه وقتی که این نفس از وجود انسان جدا میشه باز میگه بو بسوی پروردگارت راضیتن در حالی که خودت راضی هستی و مرضیه که تو خدا رو را هم راضی ساختی یعنی هم خداوند از پیش رازی است که شورازی است و خودت هم راضی میشی چرا که انسان وقتی از خداوند راضی شد باز خداوند خداوند از انسان راضی شد باز خداوند متعال انسان هم راضی میسازد توبندی و ها و جنت نصیبش میکنن تا که ای راضی شود خب والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقترو و وکن بین ذالک قواما این صفت پنجمی مسلمان ها هست چیست؟ والذین ازا انفق والذین و دیگه بنده های رحمان صفت دیگه پنجمشان چیست؟ ازا انفق وقت که نفقه میکنن مصرف میکنن خرش میکنن لم یوسریفو ولم یقترو نه اسراف میکنن یعنی خرچی نمیکنن ولم یقترو و همشان تنگی نمیگیرم که بسیار بخیلی بکنن با بخیلی مصرف بکنن و که بین ذالک قواما و می باشند در بین اینمی دو بخش موتدل چی مانا موتدل می باشند؟ اینجا صفات دیگه پنجمی مسلمان ها و بنده های خدا اعتدال و دوری از هر گونه افراد و تفرید در کارهای خود مخصوصاً در مصرف پول بسیاری وقت انسان که اونا این صفت ندارن چی میکنن؟ در پیدا کردن و مصرف پول افراد و تفرید میکنن اما بنده های حقیقی خداوند مطال گناچی عادت دارند که نه اسراف می زیاد زیاده روی میکنند و نه هم بخیلی میکنن خصوصا در نفقه بالای فامیل خود نه اوت میکنند که مثلا چهار پنج پس غذا را ترتیب بکنند و وادی آخر که شود نیم غذاها داد سر بازربورند باز رو ورند به باطل اسراف است و از حالت همسایه های خود خبر ندارند از حالت امسایه های خود خبر ندارن از حالت فقرا خبر ندارند ها خبر ندارن از این خاطر یا ای کار این کارو میکنیم ایناルメ که بنده های رحمان کسان هستند که وقت نفقه میکنند اسراف نمیکنند ولم یقطرو و همچنان بخیلی نمیکنند بعضی کسا هستن که پول دارن لکن بالای اولادهای های خود د یک چهارک میوه هم بخیلی میکنند. از این خاطر انسان مسلمان نه اسراف میکنه و نه هم بخیلی میکنه بسیاری کسا هستند که اینی سبب اسراف و زیادروی مسلمان ها اگر ما شما متوجه شویم چرا یک تعداد مسلمان ها کافر میشن چرا یک تعداد مسلمان ها از دین اسلام متنفر میشن و دینهای های دیگه میرن علت اساسیش اینمی اسراف و زیادروی است که به سبب عادات و رواج و غرور شیطانی بسیاری کسا میگن که من باید داروسی خود 30000 40000 رو مسرف بکنم برای یک سازنده داروسی خود 20000 هزار بیست هزار ولی اگر در رای خداوند یک هزارم باشه مسرق کرده نمیتونن و شیطان سر از اینا حاصل کرده اینمی که اینا اسراف میکنن و زیاد روی میکنن در مقابل اونجا فقیر هستن که حق از اینا رو ندادن اونمو فقیر بالاخره بلاخره گمراه میشن و بلاخره فقر انسان و کفر میکشنن وقتی که مسلمان وظیفه خود را ادا نکرد فقیر کافر میشد وقتی که فقیر کافر شد در روز قیامت خداوند از ما پرساند میکنه که چرا داروسیت مثلا 3 4 لگر تصرف کردی نمیشد که اروسی تا به 1 لگر پایت بکنی و یک کاری دیگه بشه برای فقرا و مساکین بتید برای یتیم خانه ها بتید مکتب جور بکنی یا کاری دیگه راه می‌کردی کار را مثبتا می که پیش خداوند اه، اه، انسان مسلمان حقیقی کسی است که کس؟ پیش خداوند متعال لجالوهو که داشته باشه که من اگر اینقدر به خاطر نفس خود مصرف دردم باید نصف به موندازی اما قدر برای خداوند هم مصرف بکنن این صفات دیگه مسلمانای حقیقی بود ششم صفت شو نمیگم ششم صفت اصلاح های حقیقی چیست؟ والذین لا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَهًا آخَر وَالَّذِينَ دیگه صفت از اینها تسایی هستن که لا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ آخرم. که اینها نمی پرستند ما الله به امرای الله جل جلالهو الهن آخر خدای دیگر را پرستش نمیکنند. یعنی مسلمان های حقیقی کسانی هستند که عبادت خداوند متعال جل جلالهو را میکنند. عبادت خداوند متعال بخش ایدیولوژی و نظری و فکری دارد و بخش پرکتیک و عملی دارد عبادت نظریه است که انسان در عقیده داشته باشه ایر عبادت اصلا چی است؟ پرستش خداوند از نگاه اعتقادی است که خدا انسان عقیده بکنه که خداوند مالک است، خداوند خالق است خداوند رازق است خداوند یکی است، شریک و مانند نداره از داشتن فرزند و زن و اولاد و شریک پاک و منزه است احتیاجاتی که انسان داره، ایر خداوند نداره بلکه خداوند نیاز است اگر کس ای قسم اعتقاد داشته باشه ای از نگاه فکر و اندیشه و نظر و ایدئولوژی خود مسلمان معتقد است ایناله بخش دوم که است عبادت چی است؟ که انسان عبادت خداوند متعال جل جروه رو میکنه این توحید عملی هست توحید عملی چی میگن که انسان در عمل خود یک پرست باشه چه وقت میتاره انسان در عمل خود یک تا پرست باشه که هر چیزی که عبادت او عبادت است او مخصوص ذات خداوند مطال جل جل, جل داشته باشه یعنی عبادت خدا با ذات خداوند مطال جل جل رو بکنه این نصالاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمی امین. یعنی نماز ما و انسالاتی و نسکی و دیگه مناسک ما و محیای و زندگی ما و مماتی و تمام مرگ ما همه چیز ما لله رب العالمین باشه اگر قربانی میکنن انسانه که یک تا پرست است در عبادت عملی قربانی خدا بنامه خدای یک تا میکنه اگر نظر میکنن نظر خدا نام خدای یک تا میکنه اگر کمک می یا الله میگه گرد خدا از خدای متعال جل جلوه می قاید ایا که نعبود و خدای خواست را عبادت می وقتی که خود انسان در ممازهای خود خداورد چی می که ایا که نعبد و خدای خواست را عبادت می کنیم چیست که من در عبادت خود کس دیگه را شریک نمیسازم یکی از صفات عباد و رحمان از بنده های حقیقی رحمان چیست؟ والذين لا يدعون مع الله اله اخر كسان يسنك لا يَدْعُونَ نمی یا نمی پرستند معالله به امرای الله جل جلاله الهان آخر خدای دیگی را نمی خواهند از دا از یادونه از دعا یا دعوت گرفته شده چی ملاکی؟ در دعای خود از ذات خداوند جل جلاله کس دیگی را در دعای خود نمیاره. میگه یا الله مشکل بهش پیدا شد یا الله مریض شد یا الله دموتر بالا میشه یا الله وقتی که می نشینه یا الله به خاطر چی که تمامی پیغمبران از حضرت آدم علیه السلام تا حضرت محمد صلی الله علیه و سلم تمامی از این آمدن به خاطر یک کار کدام کار بود که توجه انسان از مخلوق به خالق انتقال بدن و شیطان چی میکنه شیطان کوشش میکنه که یا ملائکه را یا پیغمبر را یا یک شخص بزرگوار یا هر کسی که باشه یا یک انسان یا یک حیوان در این انسان عظمت بده تا او به وضع نام خدا نام اینمی مخلوق بگیرن ایسایی ها رو که عزتی ایسا علیه السلام میکنه یا ایسا و نماریم میگنه چرا میگید؟ او خود پیغمبر خداست شخصیت بزرگ است دوست خداست ما برشان نگیم که نخیصه او اگرچی پیغمبر خداست لیکن پیغمبر خدا صلاحیتی ازیده نداره که کسی را ببخشه صلاحیت ازیر نداره که کسره مثلا شفا بده صلاحیت ازیر نداره که مثلا کسره دردش رو دوا بکنه، بلکه اونا هم بنده های خدا بودن به خداوند متعال سجده میکردن. حزی خاطر پیغمبر صلی الله علیه و بر برکاکای خود بسیار مخربت میکند، خداوند برش گفت که اگر 70 مرتبه هم برکاکای مخربت کنی، خداوند ایده نمیبخشه. چرا؟ به خاطر از که اساسه که خداوند رو میپذیره کل تو توحید نداره خدا پرست نیست از این خاطر بخشایش های چه پیغمبر صلی الله علیه و سلم طلب مغفرت پیغمبر صلی الله علیه و سلم برای کسی که بی ایمان هست و عقیده نداره و عمل نداره هیچ تاثیری نمی کنه ولا یقتلونا النفس التي حرم الله الا بالحق دگر چی است؟ دگر صفات مسلمانان حقیقی چی است؟ ولا یقتلون النفس التي حرم الله که اینو به قتل نمی رسانند. نفس را که حرم الله که خداوند مطال جل جلاله قتل را حرام ساخته الا بالحق مگر در صورت که حقش باشه که باید اونا یا قصاص شوند در مقابل جرم خود و یا یه هم در صفحات جهادی که در مقابل مسلمان ها برخواسته باشن و مسلمان ها رو بکشن بازده اون صورت از این خاطر صفت افتومی مسلمان ها چیست؟ پاکی دستانشان هست از آلودگی و خون دیگران یعنی مسلمان حقیقی کوشش میکنه که دست خود از خون دیگران باید حفظ داشته باشند. به خاطر چی؟ به خاطر که خدا طیعنبرس و سلام میگه که کل مسلمین علاو مسلمین حرامون هر مسلمان بالای مسلمان دیگر حرام است چیش مستقیم داد کام تقدم میکنند ماله و دم و ارض سی سه چیزی یک مسلمان بالای مسلمان دیگر حرام است مطلقاً کیچی است که یکی مالش است که انسان باید به با مال کس تجاوز نکنه به هیچ شکلی از اشکال یک روپی کسره هم و شکل منفی و غیر قانونی باید نخوره. و دمه همچنان خون از اینا سر از اینها حرام است و عرضو همچنان آبروی مسلمان که انسان باید آبروی که را نریزانه به مزاق کردن، به غیبت کردن، به سخن چینی کردن، به تهمت کردن از این کفاخ حفظ بکنه چرا که هستی اصل از مسلمانان هم همچنان از غیر مسلمان ها غیر مسلمانی که بی در صد بر ضد ها نخیزد و مسلمانان را نکشد، با مسلمان ها قتل نداشته باشد، سر از اینها تجاوز کنه مثلا تجاوز نکنن با او هم مثلا مثل که در افغانستان हिन्दू ها هستند که اینا یکی اهل ملت هست و یکی اهل مسلمان ها در کشور اسلامی که غیر مسلمان ها زندگی میکنن یکی اهل ملت هستن اهل ملت کسایی را میگه که در ملت اسلام داخل هستند و کلمه لا اله الا الله محمد رسول الله را میخارن. یا اهل ملت میشن در ملت و در دین داخل هستند و یک هستند که اونها اهل ملت نیستن اونا را باز اهل ضمت میگن اهل ضمت که اوها در دین داخل نیستند لاکن مسلمان ها زمواری از این هست که با اونا خونشان ابروشان اینه میکستم که مالشان و خونشان و آبروی از اینا هم حفظ شود یعنی یک مسلمان حق نداره که یک هندویی که در شار است یا در مال ظو خیانت بکنن و یا هم در خون ظو خیانت بکنن و یا هم آبروی از رو زانند. در غییر دو اگر کسی یک هندویی که اهل زمه صورت میکشند، بالای خود از اوو هم محکمه حکم به قتلله حتی غیر مسلمان هایی که به طریق رسمی از طریق ویزا و پاسپورت داخل یک کشور اسلامی میشن اینا هم در زمواری از اینا داخل است. اما کفار که به زور و به صلاح و با قوت و به دشمنی با مسلمان ها برمیقیدن و تجاوز میکنن با از اینا در حفظ مسلمانان ها و مسلمان ها مسئولیت حفظ خون از اینها را ندارن بلکه مسلمان ها در اون بالایشان فرض میشن که از وطن و از خاک و از ملت خود دفاع بکنن. ولا یزنون صفت دگی مسلمانا چی است؟ صفت عشتومی شان. عباد و رحمان ولا یزنون که اینا زنا نمیکنن یعنی پاکی و،, پاکی و افت صفت زنا هست خاطر چی که در آیت شریف دگی خداوند متعال جل جلالهو جل برای مسلمان ها گفته که برای مسلمان گفت که ولا تقرب زنا به زنا نزدیک نشین فرق از بین نزدیک خداوند میگه که زنا نکنین و به این از این که به نزدیک نشین ایره مفسیرین اکرام میگن که ولا تقرب و زنا شما حتی به وسائل که منجر به زنا میشن از او خودا دور بسازه به خاطر چی؟ به خاطر ازی که وقت انسان در گرد گرد یک چای که مردار آوای مردار از گردیرد ازو که زیاد انسان ده بگرده بگردن بالاخره پاش میلزه و ده مرداری میفته از این خاطر خداوند متعال میگه که شما حتی به اون اشیایی که سبب زنا میشه مثلا بسیار قول دادن و دست دادن با زنهای نامحرم تا که میتونین خدا حفظ بکنین از صحبت بسیار زیاد با نامحرم از صحبت گرفت زن با اینا حفظ بکن از خلوت نشستن در اتاق های با با نامرمما خود حفظ بکنن همز ها و هم مردها کوشش بکنن که کارا بکنن همچنان از دیدن فلم هایی که سبب به چی میشه؟ سبب سروت عضی میشه که انسانه از داخل نفس اما را به سوی زیره در حرکت میاره عی هم باید انسان اجناع بکنن از نظر کردن به ناموس مردم اجنااب بکنن از خاطر خداوند مطال یک مسلمان می که والا و شما به وسائل که منجر به زنا میشن به خدا خود نزدیک نکنیم. و یکی از صفات عباد الرحمن اینمی است که اینا خود از زنا و وسایل زنا دور نگه میدارن و من یفعل که یلق اصاما اگر کسی ای کار کرد چی میشه؟ ای کارها مرا بکنن با اقوبات بسیار دشوار این مبتلا میشن ذوق له الاعذاب يوم القيامه ويخلد فيه مهانا محا دیگر چی است گناهی از دو چند می شود روز قیامت و یخلد فیه مهانا در عذاب خداوند جاودانه میماند در حالی که بسیار توهین میشه شود در عذاب خداوند که تو اینقدر وسائلی که داشتی امکاناتی که داشتی بی‌خاطر چرا از اینا استفاده نکردی و تو خدا در عذاب خداوند انداختی این حق برازمی امور آمد خصوصا مثلا ما شما میبینیم که اِسے عامڑے آخری کی ذکر شد والذین لا یعبدون مع الله الہاً آخر ولا یقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا یزنون ببینن سجدہ است اول چی بود لا یعبدون ما الله الہاً آخر چرا که اگر یک کس اینجا جمعی که چرا عذاب ازنا دو چند میشه شاید یک کس پرسال برای خویا یک چند گناہ کردن عذابش چرا دو چند میشه عذابش اون به خاطر ازید دو چند میشه که کسی که بغیر از خدا کسی دیگه عبادت میکنه وقتی که انسان بغیر از خدا عبادت کسی دیگه کرد تنها با مخ اکتفا نمیکنن باز به با گناه های دیگه هم ایم ابتلا میشن یعنی وقتی که یک نفر با غیر از خداوند کمک از کسی دیگه خواست باز پول خدا هم در رای اونم مصرف میکنه گناه های دیگه رو هم میکنه از یک خاطر گناه ازی دو چند میشن و کسی که قتل نفس میکنه یک نفر هم میکشن گناه ازی این چرا دو چند و سه چند و چار چند و در چند میشه به خاطر که یک نفر را که میکشه یتمن و عضو یک فامیل است کل جامعه را ای فاسد میسازد از این نفر که میمون اینا کلشون بی‌سرپرست نمونن زندگی فامیل از اینا خراب می از این خاطر گناه قتل سبب خرابی در یک فامیل و چندین فامیل و حتی جامعه را فاسد میسازد. از این خاطر خداوند بر از چند چند عذاب میده و همین قسم که از که زنا میکنن زنا سبب چی میشه سبب بربادی یک فامیل میشن اون فامیل دختر برباد میشن خود ازی برباد میشد طفل که پیدا میشد طفلی میباشه که بیستر پرست نمونه از این خاطر یک زنایی که پیدا میشه ایستها جرم دیگری را ایجاد میکنند. از این خاطر خداوند متعال که بر از اینا یودا عفلهلعزا او یوم القيامه در روز قیامت عذاب از از اینا را چند چن میکنن به اعتبار ای که بالای اینی گناه چند دین گناه دیگه هم صورت میگیره یک قتل خونا کرد بلکه یک فامیل زندگی کلشان رو تباه کرد یک زنای که قسم میکنند زندگی از دختر تباه میشه زندگی فامیلشان هم میشه کلشان آبرو و از بین میره ما شما پیشر که چی است ابروی مسلمان هم بالای انسان فرض است که عبور از را حفظ بکنند. خب من تاب و آمنا وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات بله اگر یک انسان کافر می شده باشد و یا قتل میکنه و یا زنا میکنه باز توبه میکنه به دربار خداوند رجوع میکنه و کوشش میکنه که جنایات قبلی کرده مال کسی ده خورده آبروی کس ریخته او را دوباره دوباره چیکونن اعاده حیثیت بکنه اعاده مال بکنه مال شد دوباره پس بره اگر نفر رشوت خورده میخوای توبه کنن این باز توبیش تا وقت قبول نمیشه کنن پسیه رشوت پس بره به مون که از پیش رشوت گرفته اول پسیه رو برسنه باز بازو حق خدا رو بتا چرا که خداوند متعال در روز قیامت اول از حق بنده ها رو اصاب میکنن حق بنده که خلاص شد باز حق خدا اصاب میکنه. خداوند متعال ذات عادل است اول حق بنده ها را میگیرن باز حق خدا در حق بنده ها بخشش نیست در حق خدا بخشش است یک نفر بی نماز نخوانده، خداوند میشه دوره ببخشه اما اگر یک نفر یک رو کسی دیگه را خورده او را ارگز خداوند متعال نمیبخشه تا که حق از دوره برازم جانم بقابل نداره خب مگر کسی که توبه بکنه و ایمان بیاوره و عملا صالحا و اعمال نیک بکنه فا که یبدیل الله سیئاته حسنات اینی کسانی هستند که, که خداوند تبدیل میکنه گناه ها ی زنا ها الا مگر من کسی که توبه توبه نمود و آمن و ایمان آور و عملا عملا صالحا و عمل کرد اعمال نیک فا که یبدیل الله سیئاته حسنات خداوند متعال تبدیل میکنه های از اینها را به نیکی ها به خاطر چی به خاطر از اینکه یک نفر اگر صد ساله کافر هم باشه وقتی که با اخلاص کلمه توحید میخونه تمام گناه های قبلی از را خداوند اعفه میکنه و اگر یک کس توبه میکنه دوباره اونم مال مردم و پس برش میده و از اعمال خود پشیمان میشه و به خداوند رجوع میکنه و به خداوند عهد میکنه که خدایا من دیگه اینو می باز تکرار نه امی‌کنم خداوند مطال اینا را بدی‌هایشان را دور میکنن و به جای بدیهایشان خداوند امی بدیهای زنا را به حسنات تبدیل میکنن و کان الله غفور رحیما چرا که خداوند مطال آموزنده گناه ها و رحیم و بسیار مهربان است تا وقتی که انسان حضرت اسرائیل علیه السلام ندیده تا ای وقت انسان فرصت داره که اگر کافر هم باشه به خداوند رجوع کنه اگر گناهکار هم باشه اما اگر یک انسان در اونمون لحظی لحظه گناه میشه و اسرائیل در جانش میه باز فرصت توبه نداره به خاطر چی به خاطر که ایمان به است فرعون دعوای خدایی میکرد لکن وقتی که اسرائیل علیه سلام دید فورا گفت که آمن تو براب به رب موسی و هارون لکن خداوند گفت علی ایمان تو قبول نمیشه به خاطر از که آل بچش دیدین و من تابه و هر کسی که توبه میکنند و عمل صالحا و اعمال نیک میکنند فَإِنَّهُ وَيَتُوبَ اینمی کسی که توبهت میکنند الاللّای الله تابا به خداوند متعال این رجوع میکنند یعنی این رجوع کردنی هست بگربار خداوند متعال جل جل العمر یعنی کسی که توبه میکنه و به خداوند رجوع میکنه خداوند متعال جل العمر ذات رحمان و رحیم هست توبه زیره قبول میکنه صفت دیگه مسلمان‌ها صفت نبوحیشان است که چی است والذین لا یشهدون الزور کسایی هستند که اینو شهادت به دروغ نمی دهند و کسانی اصلا مسلمان های حقیقی که لا یشهدون زور شهادت یا گواهی دروغ نمیدهند و اذا مر رو وقتی که مرور کردن به امور لغو بیهوده مر رو کرامن گذشت بسیار کریمانه می چه قسم؟ این صفات نومی و دهومی انسان های و رحمان بنده های خداوند باید میکنه که هستند که لایش شهون از زور که اینا در مجلسی که شهادت به چی میتن دروغ میدن در این مجلسا ایشراکه نمیکنن و زبان خدا هم حفظ میکنن یعنی هیچ وقت سر یک مسلمان شهادت دروغ نمیدن خانه یک سر خراب نمیکنن که چند نفر دست خدا یکی کنن بر علیه یک مسلمان بخیزن و بر او گوانتی دروغ زنواک کار سی غلط کار است, است، تاکی کی اراسل ازی در جامعه یک جرم را ثابت کنند شهادت دروغین سرک از دروغ شهادت دادن این گناه کبیره هست یعنی عباد الرحمن شخصیت دیگران را حفظ میکنن و بالای کسی هیچ تهمت نمیکنن و همچنان لایش شهدون از بعضی از مفسرین کرام میگن که اینها در محفل که در اونجا گناه و ناروا هست دهو حاضر نمی‌شن وقتی که مسلمان دید که یک مجلس است که مجلس گناه هست آستای که در مجلس گناه خیزن وقت خدا زایی نمی کنن. از این خاطر عباد و رحمان کسانی هستند که حتی در مجلس هایی که گناه هست دهوش راک نمی کنند به خاطر ازی که بعض ما شما خاط خواندیم در از آیات شریف می که دو اون مجلس که خدا داش نام داده میشه پیغمبر خدا مسخره گی میشن دو اون مجلس نشینید اگر ششید شما هم در جمله از گناه هستید خاطر چی؟ مثلا یک نفر می که بعد یک مجلس غیبت چشته بودم و غیبت نکرده المتم او بقیق مثلا چی میگن؟ المط او احول مختین کس که گوش میگیره یک تن از غیبت کنندنده ها هست به خاطر که اگه تو غیبت از رو گوش نگیری من غیبتشه گوش نگیریم پس اون چرا غیبت باید بکنن ان حال انسان مسلمان مجرده که غیبت یککس رو میشنوع فورا از اون مجلس می خیزن ویه اورم که بهبرادار محترم امی کارا نکن یک روز مدر پوانتون دلائلیه بودم امراه ما در اتاقم یک بنگلدیشی بود وقتی که ای بنگلدیشی کم مدر آمد بعضی از معصیل نادت دارن که همی آداب اتاق هم امراد نمی کنن تو در درس استی اکیمه می دروازه رو دام می در حالی که باید انسان یا اخلاق امرات بکنه احیانا یک کس استراحت میبوشه نه و چشماش پُت میشده باشه و کوهات کمی دروازه را به زور خواب خراب عزیز خراب میکنه از این خاطر بسیار از چیزی بر تکلیف بودم همین برای یک صنف ما که بسیار با تقوا بود برایی گفتم مرتمد هم ی اتاق بسیار به تکلیف هستم امی هم اتاق ما وقتی که داخل اتاق میشه در دروازه بسیار عادت داره به زور میزنه آنی به من گفتم که این نفر این صنف ای ما با گریه شروع کرد این از موریدانی بود حافظ قرآن بود گریه گیریه رو شروع کرد مفتم چرا گریه میکنی؟ گوه برای بر تو خواه رو در غذا به خدا گرفتار کردی این غیبت شد اگر مشکل داری برو به همراهی و عمو تا مشکل طرفاگو برجوب برادر عزیز همین کارا نکن از این خاطر تو گلیه میگن قال مرا بیخیال توبه دارم رفتم دیگه زندگی کردم تو اچ نه میگم دیگه بد کردم و پاره چوب شو میگنی من در آتش شده از عذاب خداوند سوختان از, خدا از این خاطر کسی که غیبت گوش میگیره در حقیقت جانم مقابل تشویق میکنه برایش کله شور ور میتگار راست میگی المستمع و احد مختابین و در یک مجلسی که مثلا کفر گفته میشن نارهوا خدا و پیغمبر داشتن داده میشن از دی مجلس مسلمان فورا میخیزه میبره تا کنه می که گپ میزنه بفهمه که والله این از مجلس ما وام خیره رف وام رفت وام رفت خودش شکست میخوره اما کلگی خدا چوب بگیره و بگه که نه ما آرام میشینیم و خشونت نکنیم و چتو نکنیم این چه خوب خشونت کافر گپ میزنه تو گپ شناشنی بو بهادر گفت که گپ میزنید گوشش تام ما رفتم با مانو خدا ها والذین لا یشهدون الذور این صفت دیگه از مسلمان ها بود و اذا مروا باللغو مرو کراما وقتی که ای صفت ده هم مسلمان عباد و رحمان و ازا مر رو وقتی که مرور میکنن به لغو به امور لغو به چیزهای بیهوده مر رو با بسیار بزرگواری از پیش از این میگذرن مرور بل... رو... کراما یعنی کرام یعنی مرور کرام میگن چه قسم مرور کرام میکنن؟ یعنی مسلمان کسانی که عباد و رحمان هستن اینا هدف مثبت دارن هدف مصبتشان چی است که اینا در جایی که لغو هست لغو چی رو میگن؟ لغو هر چیزی بیهودی که برای انسان منفعت نده دنیا داشته باشه نده آخرت داشته باشه او لغو میگن یک چیزی هست هر عمله که نادر دنیا با فایده انسان باشه و نه در آخرت بر انسان فایده بکنه یا هم ضرر دنیایش باشه هم ضرر آخرتش باشه یک نفر پیسہ dora میره یک دونا ویجورامیره سیچل نفره ها جام میکنه بین که ما یک فیلم مزخرف نشون بدم رقص بر ازین میدن هم نقص دنیای شد و هم نقص آخرتش شد نه در دنیا فایده کرد نه در آخرت این لغوا میگن یعنی هر چیزی که بنفع انسان نه دنیا و نه در آخرت باشه این لغو است بیهوده هست. یک نفر مثلا درس میخونه هم منفعتش ده دنیاست هم منفعتش ده اخرت است اینا واو گفتنه میشن اما یک نفر فکویی میگه اینا می فکویی گفتم نه ده دنیا چیزه فایده دارن به خاطری که هم سلفیش هم کس میگه فلانی دیدی آه ای بسیار مسخره است این بسیار لچک است این بسیار رحمت بی است این بسیار زبان چنگ وقتی که دو سه سالم باشه که دمی مجلس میشینه فکویی بگه ادمام تو دیگه را میگن دوست چ خوب فکایی گفته، گفتونه من قسم خدا جان میکنه خجالت میکشن که دوست ما رشخند است وقتی که دوست انسان ریشخند بم دیگه خودت مطمئن رشخند است دیگه که این دوسه تو تو است از این خاطر انسان کوشش میکنه که زبان خود از فکوی گفتن و خصوصا فکایای که 99 درصد از اینا دروغ است دروغ جور میشه و افکایی جور میشه از این خاطر میگه یک نفر یک دروغ رو میگه در حدیث شریف بیغمه سمیه که یک نفر یک دروغ را میگه تا دیگرها رو خنده بدن جزای دیگر چیز که یک دفعه باید اینه می نفر در آتش دوزه خودتا بخورن دروغ از این خاطر انسانایی که حباد و رحمان هستن چی سفتشون و ازا من رو به لغوی من رو کرامان اگر دیدن در یک مجلس که اون جرش خندیست و لچکیست و کرام میکنن از این بغلکش که در تیر میشن میرن خودم مصروف درس و تعلیم خود میداشته باشن والذین اذا ذکروا بایات ربهم لم يخروا عليها صم و اميون صفات دی بنده های خداوند عباد الرحمن چی است؟ صفات 11 اینا چی صفات دارن؟ کسان هستن که اذا ذکروا بایات ربهم وقتی که آیات پروردگار خدا برشان آیات پروردگار برشان گفته یا خودشان قرآن از مشوانا میخان لم یخرو علیها دئی امتو کور کورانا نمیفتن نمیفتند دی سمن و امیونه یعنی نه تو خدا کر میسازن و نه هم خودا کور میسازن منظورش چی است منظورش است که اینی کسایی که صفت دیگی دارن اینا تفکر مثبت دارن تفکر مثبت در چی وقت دارن در وقت شنیدن دیدن و خواندن وقتی که یک آیته خدا را میشنوه، درباره ازی درست تفکر میکنه. وقتی که بینه یک نشانه قدرت خداوند را درباره ازی فکر میکنه. و وقتی که یک آیه خودش میخونه، درباره ازی فکر میکنه. از یذکرون الله خداوند متعال میگند کسانی هستند مسلمانان حقیقی که ذکر میکنند خداوند را قیاما و قودا و علی جنوبهم در حالی که ایستاده هستند و در حالی که نشسته هستند و در حالی که در پهلو افتاده هستند در میسه هستن. یا چی میکن؟ و تشمكر ويتفكرون في خلق السماوات والارض فکر میکنن در خلقت آسمان ها و زمین باز میگن داخلش اخرش که رفتنا ما خلق ده ها باطل. خدا یا اینا باطل خلق کردی از این خاطر یک مسلمان حقیقی که صورت چهره یک نفرم میبینه آثار قدرت خداوند در وجود از اون میبینه که خداوند متعال چه قسم اینا خلق کرده کوه ها و انسان ها را همه اینا از خاطر انسان های مؤمن و عباد الرحمن کی هستن جز ازو یا تراب بهیم وقتی که برشان گفته میشن یا یکی کسی برشان پند میدن یا برشان در یک مجلس مسئله گفته میشن نشانه های قدرت خداوند مطال لن یخیر رو علیه ها سمم و امیانا در این قسمت اونموتان کرکرونه كور نه افتند به شنیدن آن و به گوش دادن از او بلکه چی میباشن با نظر بسیرت نظر, بسیرت نظر قلب میگن در قسمت از او تفکر میکنن و خدا به ها میرس صفت والذین يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین دیگه صفتی از این مسلمان‌ها چی هستن؟ دیگه صفتی دیگه از اینا که صفت دوازدهم است، اینا کسان هستند که میگن ربنا پروردگارا هب لنا یعنی برای ما ببخش برای ما من ازواجنا از همسرای ما و ذریاتنا و از های ما قرة اعین مایه روشنی چشمن یعنی برای ما رو روشنی چشم مایره رو بسات چه قسم اولاد انسان و همسر انسان روش مای روشنی چشم انسان میشن به خاطر ازی که خداوند مطال میگه که یا ای الذيین اما نکون فسکن و اهلی و نارن و خوه هم نصول هجاره. یک کسسان که شما مسلمان هستین شما هم خوددا و هم اعضای فامیلتان را از آتش دوزخ که هیزوم عزی انسان ها و سنگاو از ایننج بدیم ازی خاطر انسان مسلمان صفف دیگه چیست که این توجه و عایت، با تربیه همسر و فرزندان خود می داشته باشند یعنی کوشش میکنه که چیزی حقیقتی را که در کرد اینه کوشش میکنه که بر خانمم خود هم ببره به اولادهای خود هم ببره و اونا را هم حقیقت ها را برشان بفهمانند از این خاطر نوکی میگن دوای که میگن ربانا هبلنا من ازواجنا و ذریاتنا قرت اعین خدایا بر ما بده ببخش من از ازواجنا از همسر ما و ذریاتنا و از اولاد های ما قرت اعینن روشنی چشم یعنی اینا خدایا تو هدایت بکن تا که وقتی اینا هدایت میکنی اینا هدایت میکنی اینا, هدایت میکنی اینا چی میشن اینا نور چشم ما میگردن نور چشم چه وقت میشن وقتی که اینا در راه خداوند باشن در راه حقیقت باشن در راه عبادت خداوند باشن از ای خاطر این خاطر بنده های خداوند عباد و رحمان تنها او کسای نمیشن خدا در جمله بنده های حقیقی خداوند بگیرن که ببای خدای من رو بخش دیگار رو چی کنم بلکه کوشش میکنن که اگر خودش عبادت خداوند میکنن فامیل خدا، همسر خدا همچنان اولادای خدا اینا را هم متوجه عبادت بسازند. و صفات دیگه از این ها است، واجعلنا صفات سیزدهم همه از اینا میگه واجعلنا للمتقین اماما خدایا ما را برای مردم های متقین امام بساز یعنی ای اساس دعوت است که یعنی انسان مسلمان دعا میکنه به خداوند مطال میگه خدایا حوال مره هدایت بکن و مره وسیله هدایت دگران بگردن از خاطر انسان مسلمان کوشش میکنه که امام باشه یعنی وقتی که شما در یک مجلس که کل از متقی متقیاز گپ میزنین بر از اونا امامت میکنین پشوایی میکنین رحبری میکنین دعوت و قناره میکنین در حقیقت شما خیرخواه هستین از این خاطر میگه که یکی از صفات بنده های مومنیه است که اینا باید دیگار هم دعوت به طرف خیرو در دعوت به طرف نیکی ها بکنند چرا به خاطر ازی که خداوند متعال میگه عصر قسم است به وقت به زمانه ان الانسان لفی خسر انسان در زیان و نقصان است هر قلمه که میمونه به طرف قبر نزدیک میشه عمرش کم شده میره بسیاری وقتا ما شما غلط حساب میکنیم اگه از نگاه ریاضی ما شما حساب بکنیم ما شما عمر غلط حساب میکنیم یک نفر میگه که عمر ازی بسیار زیاد است در حالی که عالم باید این قسم حساب نکنه او عمر که تیر شده خلاص شد حال عمر باقی مانده رو باید حساب کنه ولی یک نفر که سال از زیاد وقت داره یا یک نفر که سال از زیاد وقت داره سال از زیاد وقت داره به نهان کدامشان بزرگتر هستن؟ کسی فرصت زیاد داره انال او از نگاه قانونی او کسی که 20 سال است این بزرگ است او کسی که 60 سال است خورتراک است چرا که چه قوار دارن وقتی که تیر شدو حساب نمیشه که میگه والا من 60 سال تیر کردم توخت 60 ساله حالا تو 5 ساله دیگه وقت داری پنج بین پنج سالگی 70 سالگی میموری درکه این نفری که چیست هستا 20 ساله است او وقت زیاده چرا 40 سال وقت داره او کسی که با ده سال است او زیاد عمرش کلان است به خاطر ببینید ما شما حتی هم حسابون هم خود غلط حساب اما اگر به اصابه عینه به سارت به سیرت نظر بکنیم باید و کسی که عمرش زیاد است بگویم من خواهدتر از توم از کردن چرا؟ وقتش کم است وقتش کم و او کسی که مثلا میگه من بیست ساله هستم او هم باید خدا بگه که من هستم چرا خردستی؟ او که بیست پنج ساله هست بگه من هم به خاطر چی؟ بخاطر از این وقت که تیر شده اون خود تیر شده این وقت که پسان میهه از این چی خبر داری که این وقت پسان تو؟ آیا دی ای وقت که تو نگی پسان میهه این ای وقت بر تو نهی یا نهی؟ بشری که که نان چاشته میخوره از این دروازه که بیرون میبره که موتور تکر میکنن جای بجای میفته و میمیره اونمون نامی که این نام زندگی که نهادن مرتو را این نام زندگی را که بر تو گذاشتم که انجینیر صاحب مدیر صاحب دکتر صاحب عالم صاحب استاد فلانی جای حیات نام تو میت نهادنیست مجرده که در یک aksident آسا کرده مله سرک موتور کمی یک زدن که باز که مردی روحت که پر واز کرد چی میشن؟ وازه هیچ کس نمیگه که انجینیر صرف کجاست نمیگه داکتر صرف کجاست نمیگه وزیر صرف کجاست نمیگه رئیس صرف کجاست میگه بیادرم مرده کجاست مرده در کجا بردن چه وقت مرده را دفن میکنن در یک دقیقه جای حیات نام تو میت نخواده نیست غرامه شد بر این گل روزگار بستان هرمه شو با این گل روزگار زیرا باد خزان بر این هر هرقدر که زیبا و شاداب و خوش باشی دیگران می‌بینند که خزان آمد امید. گلای گل‌های چقدر خوب آدم دل‌آواز آمد می‌کشد باغ اولی شب دیگه گلای رنگ‌آرنگ رنگ دارن اما یک باد خزان که زد کل گلا زرد میشن از بند میرن و برگایش هم زرد میشن در وقت خشک میمونن انسان همینطور است که انسان باید به گل و بوستان روزگار چی نشه غرم نشه مغرور نشه چرا که باد خزان بر این گل و چون حضرت رسول خدا در جهان نمان وقتی که از او رسول خدا در دنیا نمان که محبوب خداوند بود که چی اعتماد بنابود بوده نیست سعدی با سعدی سب چی میگه, میگه سعدی در قفس که توان داشت مرغ را سعدی در این قفس که توان داشت مرغ را روزی قفس شکسته و مرغش پریده نیست یک یعنی روز قفس مشکنو این مرغ که در ما هست هم پرواز میکنه و باوزی نمیدوست که انسان بیچاره در جایی که لقب های بسیار رنگارنگی که داشت باز کل لقبایشه به مرده و میت حتی اعلانات هم جنازه این جنیه ایف مگه جنازه متوفا برداشته میشه و به خاک سپرده میشه و وقتی که عمو دوست بسیار یک انسان است باز خوبم غارای سنگوار پات میکنن که هیچ هوا داخل نشه خوبم دوستش خوب میگن گلابی گیرن دم سنگوار و اون که بسیار دوستش است میچ میکنه پرتی یک هر کسی که یک چار بیل خاک سرش خوب زیاد انداخت ثواب ازو زیادتر است او به بیچاره خوب سرش کود میکنن و کل ای بس پس نه اون بیچاره تمام جونده خب و الذين يقمن ربنا حب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اولئك انمكث كنم 13 یعنی اتاق های جنت از جنت اینا در به سبب که صبر کرده بودن صبر, چند صبر؟ قسم است صبر قسم صبر که انسان صبر در اطاعت داشته باشا. یکی صبر در اطاعت است بسیاری کسان صبر میکنند لاکن صبر در اطاعت ندارند مثلا نماز خدا که باید در نماز انسان در 5 دقیقه بخونه اینم نماز در رکات نماز 5 دقیقه خدا این در نمازه نماز در چند دقیقه میخونند در در نماز که باید 5 دقیقه بخونند در رکات نماز 2 دقیقه صبر آن نماز میخواند. بی صبر در عبادت، قرآن شریف فقط میخواند، قرآن شریف خواندن بی‌صبر است. زود خوانده میره، فکر و تفکر باری ازی نمی کنه. در همه چیز بی‌صبر است. یکی صبر در طاعت است که خداوند نصیب مسلمان ها می کنه. اولئکالذین به ما بماسبروا صبر کردن. در چی صبر کردن؟ اول صبر کردن در اطاعت. اعمالی که خدا با بسیار صبر ادا می دوم صبر در چی صبر در, در معصیت است. سبر در معصیتی که انسان وقتی که روبروی یک گناه میشن برک میگیرن اینمی که برک گرفته تانست انسان صابر است گنا رو بروش فورا خدا از گنا دور میکنن دید که یک چیز نامحرم از خدا بی یادش می فورا خدا پایین میفردا دید که یک فیلم مفطزل است فورا ایده گل میکنن دو نیم ساعت وقت خدا با ارزش میسازه میگم بشو کی کنیم بین که دو نیم ساعت دیدن یک فیلمی که هیچ آخرام نتیجهش هیچ چیز نیست و دکل فیلم چی می از دشمن خود انتقام و آخر بعد فیلم میشه کل هست عمر خدا دینامی کسا ماثوب نامه کنه نیم ساعت 3 ساعت وقت خوده به ارزش نمیسازند. همین خاطر صبر در معصیعت از واسيون قسمچی است صبر در جم... در وقت مصیبت است بسیاری کسایی که عباد الرحمن نیستن صبر ندارن چی است یک یکم که مشکل که برش پیدا شود دشنام میده خدا رو دعو میزنه پیغمبر رو دعو میزنه دین رو دعو میزنه از این خاطر اینا صبر ندارن اما انسان مسلمان کس این صبر داره صبر میکنه واسعین بالصبر و الصلاه خدا خداوند متعال میگه شما در مشکلاتتان کمک بخوایم دو با و نماز خواندن فورا نماز میخوند و بندربار خداوند رجوع میکنند و ویلقو... یلقون فیها تحییتم و سلاما این امین فرایی که مستحق جنت میشن و یلقون اینجا باز ملاقات میشه به امرای از ها <تصفح> با... چی میشن؟ ملاقات میشن از طرف کسایی که در جنت نار استقبال میکنن تحیتا با بسیار خوشامدی و بسیار دعای نیک و سلامن و دعای سلامتی و ای که خوشامدی ماند نه باشین و سلامت باشین خالدین فیها همیشه میباشن در می جنت یعنی فکر نکنیم که نعمت خداوند موقتی است بلکه کسی که این 13 صفت داشت و در آخرش صبر هم نمود که این صفت 14 ام عباد بود خاطر می که چی میشن خالیدی نفی ها در این می جنت بر همیشه باشم حسنت مستقر و مقاما بهترین جای از بهشت نیک آرامگاه است و نیک مقام است یعنی مقام بسیار خوبی است بر هر کسی که خداوند دور نصیب بکنه خداوند متعال جل جلاله جل بر همه شما نصیب بکنم قل ما یعبا بکم ربی لاولاد و اوکم بگو با قدر نمیشمرد شما را پروردگار من اگر نباشد عبادت شما یعنی انسان چقدر نداره از نگاهی چیره و قوم و قبیله و از کدام ملایت استی از کجا پیدا شدی چه چقدر از قوارچ چه قسمت زیباست پیشه چقدر برای هیچ کدام پیش خداوند متعال ارزش نداره چی ارزش داره اون دعا و قم وقتی که شما خداوند دعا میکنین و به خداوند عبادت میکنین ارزش انسان پیش خداوند متعال در تقوا است این اکرمکم عند الله اتقاکم فقط کذبتون برای کفار که شما تکذیب کردین یعنی هم رو گفتین و ایمان هم تکذیب کردین و و پس البته باشد جزای آن لازم یعنی جزای اعمال بدتان شما حتما در روز آخرت میبینین خداوند متعال جل جل جل حو. ما شما رو توفیق نصیب بکنه که اینمی چار دست که صفات عباد و رحمان است ایده در زندگی عملی شب و روز خود بالای خود صد فی صد بکنیم و آخر دعوانا و, دعوان و ان الحمد لله رب العالمین اللهم قلوبنا قلوب العظیم وزين أخلاقنا بالقرآن العظيم وعدخلنا في الجنة بالقرآن العظيم ونجحنا من النار بالقرآن العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميل المجيد اللهم ربنا أعطنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ومرقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين